نمایم دلم را و افراسیاب درخشانتر از برسپه را آفتاب هر جا که روشن بود راستی فروغ دروغ آورد کاستی نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه‌ای که می‌شنوید برنامه پنجره‌های رو به مهتاب هست یکشنبه چند شب ها آقای دکتر فریدون دونی و شاهنامه فردوسی بزرگ سلام از کردم شب شما بخیر درود بر شما شاد باشید شاد زیوید ش... همه شاد بین خداوند شادی رو با داده برای همه جهانیان با آرزو شادی برای همه گان وقتی با شادی نگاه میکنیم به جهان یه جهان دیگه ای رو میبینیم یه جهان دیگه ای برای در درونمون و در بیرونمون اتفاق میفته این مردمان هستن که با اندشه های تازه قم برای خودشون آفریدن و نه خداوند همه همراه با شادی است شما او رو راه رسو دهشتانه با کنید آخه. کر اسپا رو گوزنارو موهیای دریا همه شنو میکنه شاد همه با آرامش فقط بشر بر خودش گرفتاری پیش آورده زندگی خود رو هم راه با غم کرده اون چیزی که خواست خداوند نیست و اون آسمانی که پر از ستاره است و ماه زیباست با. خب اه ما اه امشب در برنامه پنجره های رو به در برنامه قبل داستان رستم و سهراب خانده شد. بعد از اون داستان سیاه هستش که این رو ما در برنامه های گذشته یعنی آی دکتر برای ما خاندن و رمز هم کردن. امشب ما به داستان رفتن گیف برای یافتن کیخوس رو میپرزیم. درست ارز میکنم؟ بله بله. و شما این بخش رو از شاهنامه خواهید شنید. تلفن‌های برنامه بررامه 222-4185 222-4185 2 0 220 588 2 -0. و شماره پریمه که ما سی هزار پانسد پایگاه تلالسانی ما آدرس اینترنتی ما www.radiofarhang.ia شما از یعنی اون عزیزانی که در خارج از کشور هستند اقوامشون هستند ایرانیان عزیزی که در سر, تا سر جهان هستند میتونن سلیجه خاطرت ماهواره هم اون به بخشی که مربوط به رادیو هست رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه ما و تمامی برنامه های برنامه های شبکه فرهنگ رو بشنوند. امشب من همه تلاشم رو میخوام بکنم که انشالله اگر خدا بخواد بیست بگیرم من شاگر... از <تصفيق> این رابطه... شایرد و شایرد و شایرد و شایردی برای من درسته خیلید بر... آقا فزندان بنیاد هم بارها من بگیم خب چرا بیست نمیدین یه شب با هدایتی؟ خدا هم بهشون بده کتب اشتباه نباشه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> منم بیست دیدم امشب امشتب آرزو داریم این اه ما اه در داستان رفتنگی برای یافتنگی خسرو از اون آغاز اتفاق که افتاد چرا این اتفاق افتاد و چه شد میخواستیم پایان داستان سیاه این است که ایرانیان به ویژه رستم به توران رفتن و حمله کردند و گرفتند و کیمکشی کردند اون کاری که در انداشه ایرانی خوب نیست اما وقتی که جنگ اتفاق میفته کی هم پیش میاد و مدت در توران بودن تا اینکه سران سپا برستن پند دادن که دیگه کافیست باید برگردیم به ایران مواده به وجود ما نیاز باشه اینجا تهمتن چوبش نید چرم آمدش رفتن یکی رای گرم آمدش زد توران سوی زابلستان کشید به نزدیک فرخنده دستان کشید اوزان پس چوبش نید افراسی که که بگذاشت به بدان روی آب یعنی از روده جیهون یا آمودریا گذشت و به ایران رفت شد از باغتر سوی دریای کنگ میبینید اینجا باز باغتر گفتار فردوسی یعنی شمال. بود به شمال به سوی دریای کنگ اومد دلی پر زکینه سری پر جنگ همه بوم زیروزه بر کرده دید مهان کشته و کهتران برده دید نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت نه شاداب در باغ برگ درخت جهانی به آتش برافروخته همه کاهها کنده و سوخته زه دیده ببارید خونابه شاه چنین گفت با مهتران سپاه که هرکس که این را فراموش کند همیجان بیدار خاموش کند همه یک به یک دل پراسکین کنید سپر بستر و تیغ بالین کنید آراست بر هر سویی تاختن تا ندید هیچ هنگام پرداختن همی سوخت آباد بوم و درخت به ایرانیان بر شد کار سخت شد از رنج و تنگی جهان پرنیاز برآمد بر این روزگاری دراز دیدن گودرز سروش را چنان دید گودرز یک شب به که ابری از ایران براغمت پراب بران ابر باران کجاست سروش ابر باران یعنی ابر بارنده چون دیدید که خوشتالی شد تنگی شد وقتی که مردم در حقیقت نهاد پلنگ بیارن و درندگی کنن و کیم بکیشن آسمان هم از ابر و باران خودش دریغ میکنه. آسمان در اندیشه ایرانیان وقتی باران داره که مردم اینطور نسبت به همدیگه سر نداشته باشن. شاد باشه. بران باران خوجست سروش به گوده از گفتی که بکشای گوش به توران یکی نامداری نوست کجا نام او شاک است؟ ز پشت سیاوش یکی شهریار، هنرمند و از گوهر نامدار. چه آوید به ایران پی فرخش، ز چرخان چه پرسد دهد پاسخش. میان را ببندد به کین پدر، کند کشور تور زیر و زبر. ز گردان ایران و گردنکشان، نیابد گی و از او کرس نشان. چو خورشید پیدا شد از پشت راغ برآمد به کردار زرین جناخ پراندیشه مرگیو را پیش خواند اوز آن خواب چندی سخونها براند به دو گفت فرخ پی و روز تو همان اختر گیتیف روز تو تو تازادی از مادر بافرین پر از آفرین شد سراسر زمین به فرمان یزدان خجسته سروش مرا روی بنمود در خواب دوش مرا دید و گفت همه غم چراست جهانی پر از کین و بینم چراست از ای که بی است شاه ندارد همی راه شاهان نگاه چو که خصلت به ایران زمین سوی دشمنان افکند رنج و کین نبیند کس و گردان نیو مگر نامور پور و گودرز گیف. چون این کرد بخشش سپهر بلند که از تو گشاید غم و رنج و بند. همین نام جستی به هنگام جنگ کنون نام جاوی داده آمد به چنگ که تا در جهان مردم از تو سخون چون نام هرگز نگردد که هم. بدو گفت گیوه پدر بندهام بخوشم بکوشم برای تو تازنده ام. به شد و ساز رفتن گرفت زخواب و پدر ماندن در شگفت چه خورشید رخشنده آمد پدید زمین شد به سان گل شنبلید و گودرز از گفته جان پهلوان دلیل و صرف راز روشن روان کمندی یا اسفی مرایار بس نشاید کشیدن بدان مرز کس یعنی سپاه لازم نیست خودم تنها میرم, تنها میرم. یک کمند یک اسف چون مردم برم خواستار آیدم یعنی اگر من با خودم سپاه ببرم کسانی میان که من رو یا با من جنگ باید یا ببینن تو برای چی اومدی از آن پس مگر کارزار آیدم به پیوز بخت جهان پهلوان نیایم مگه جز از شاد و روشند روان یعنی که خصور رو پیدا کرده میان تو پدرود باشو من یاد دار روان رو زدرد من آزاد دار چون به بحر پرستش رو به منبر جهان آفرین رو بخوان چون که ایرانیان و باستان پیشتر از اینکه نماز بخونن دست رو رو رو می شستن و اون در اون هنگام یک گفتاری خونده می شده سروش باش که تو آماده باشن برای خوندن نماز یه میگه هرگاه که میخوای نماز بخونی تو دست و رو تو میخوای روخت تو بشوری یعنی مقصود این که میخوای نماز بخونی اون موقع خداوند رو بر من بخوان که یار و یاور من باشه یه سوال اینجا بر من پیشم بفرمی الان رابطه گیب رو با پدرش فرمودید دیگه این رابطه رو. و این رابطه حالا بین رستن و گیب رو فرمودید این رابطه با پدر بر من یعنی این به ذهنم اومد آقای دکتر جونگی چه این رابطه سمیمی و با بزرگتره این میگیم با با بزرگ ترخواد رو صحبت کنید از اونها بشنوید این حرف شنوید این احترام به بزرگتر خب ایران باستان بوده این در باستان بوده و من حتی نسبت به برادر بزرگ برادر کوچیک نصد برادر بزرگ در رو یاد خودم من به یاد دارم که برادر کچیکی من بسیار احترام می به من یعنی فرمان پدرمون بود رو روان شد یک بار برادر کوچیکی که من تندی کرد و پدرم سخت اونو شما کرد بود برادر بزرگ در توجهشتان میگن اکا که ترجمه آقا باشه. باید. شمیدین شما باید. باید. اکا جان میگن؟ اکام یا اکا جان برادر بزرگتون برتر از پدره شما باید احترام داشته باشید. این اینو بود در ایران و باستان بود. متاسفانه بعد موزی تلویزیون و این برنامه ها و این بچه ها تو تلویزیون ظاهر میشن من که تلویزیون ندارم نگاه نه. رادیو هم ندارم نه. اما گاه گاه که تلویزیون دیدم میبینم بینم بچه ها جیغ داد تو تلویزیون و بیشتر بچه ها لوس بیشتر بچه ها خودخوا و برنامه داره این بچه ها رو خودخواه و لوس بار میاره یعنی اینو باید به فکر باشن کسانی که برنامه کودک میذارن به فکر باشن یعنی یه جور فرزند سالاری شاید توی درست نیست. نیست فرزند سال مادر سالاری درسته پدر سالاری درسته فرزند سالاری بشه همون لوسی و ناپختگی و کجروی و کجمداری و بعد اینا وقتی بزرگتر بشن نتونن خودشون رو اداره بکنن نتونن کشور رو اداره کنن آینده برای ما پر از بیمه میشه البته زندگی من تو همین قصه ای که شما خوندیدون که شما خوندید تو این در نبیات من دیدم چه احترامی رو بزرگتر میذاریم مثل اینکه، که این اینو تصویی کردم که استاد داره گوش میده درست داره حرف پدر رو با جان میشنه به داره من کار آسانی هم نمیده ولی کار من سخت من میره ولی من خودم فرزندی داشتم شد که در همه زمینه ها با نبوغ سرسار بود و روز مهر و ماه مهر و در روز جشن مهرگان در درمانگاهی که خودش درست کرده بود به نام درمانگاه مهر برای مهرورزی بیمار جان خودشو در یک لحظه از داد این فرزند هیچ گاه همتراز من تو خیابون را رفت. همیشه یک گام از من پشت سر من بود. همباره مترسب بود که من چی میخوام؟ همان شاه را انجام بدهیم. زیباتر، بهتر، لطیفتر خوشایندتر تر از رابطی درست پدر و فرزند می جنید وقتی که پدر ببینه که فرزند اینقدر فریخت است من روز مهرگان خواستم یاد او بکنم گفتم جشنه و یاد شنوندگان جانشو با مهر بر سر مهرورزی به یک بیمار ایرانی داد در یک لحظه رفت من وقتی میبینم که بچه های دیگه فرزندان دیگه, دیگه دارن با درقیت نادانی و با بازیی دارن زندگی میکنن به پدر مادر فریاد میکن جی میکشند این تلویزیون هر وقت من این برنامه رو دیدم تبلیغ من میگم این اتفاقی که ما فقط درس مردانگی پهلوانی رو از راهنامهه میآوزیم این اینا خیلی به نظر من در این درس زندگی اینکه احترام بزرگتر احترام به پهلوان برادر بزرگتر خواهر بزرگتر بارها من گفتم که شاهنامه آینه تمام نمای و فرهنگ و زندگی و جان ایرانیانه یعنی اینم یکی از مابادش درسته این تو تو سپیترو ما چیتر و کاش بکنم به پیروز بخت جهان پهلوان نیاویم جز از شاد و روشندوان تو پدرود باش و رو یاد دار روان راز درد من آزاد دار که شویز بحر پرستش رو خان به منبر جهان آفرین را بخوان مگر باشدم دادگر رهنمای به نزدیک آن نامبرکت خدا یعنی که خسرو به فرمان بیا راست و آمد برون. پدر دل پر از برد و رخ پر خون. به توران همین چون بیوشان, یعنی گیف. مگر یابد از شاه جایی نشان من پیش، پی نوشت که هوشان با نشان پس نداره هوشان با نشان ولی زین نوشت که در خراسان نشان رو نشان میگن نشان نشان نشون نشون میده ول ول میگه نشون همی ران چون بی هوشان مگر یابد از شاه جویی نشان چون این تابر آمد بر این هفت سال میان سوده از تیغ و بند دوال سوده یعنی رنج دیده یعنی ستم دیده خورش گور و پوشش هم از چرم گور یعنی بیابون فقط چه کار کرد. یا خوردن باره و آب شور اسب برای اینکه خوب پرورش پیدا بکنه باید حتما یونجو و جوب بخوره من اینو در داستان دوستان سپهتیش اینو قطعا گفتم بله ولی وقتی که اسپی جو نداشته باشه و یونجه یونجه که زبان ارمنی بود اسپاست اسپاست یعنی خوراک اسب عصب. اون استش در حقیقت از ریشه اد بوده اج یعنی خوردن ما در زبان ارمنی الان داریم اودل یعنی خوردن در انگلیسی شده ایت یعنی خوردن یعنی خوراک اسب طاقتی که از ایران اسب به چین فرستادن چون اسب رو ما رام کردیم خب حالا کسانی که سوار اسب شدن و اسب از ایران به چین فرستادن پس از مدتی نجات اونها تباهی پذیرفت از طرف پادشاه چین نامه نوشتند به شاهنشاه ایران ببخشید که شما اسب برای ما فرستادید خوراک اسبان بفرستید و وقت از ایران برای اونا بزر یونجی فرستاده که از پس باشه از پس خوشبختانه در خراسان هنوز بهش میگن سوست یعنی از پس تبدیل شده به سوست یا سوست گونه که هن خود داره و این میگه که خودش چه گور داشت و باره او یا فقط بخورد و آبهای شور بیابون. همین گشت گرده به آبان همین صداتون گرفته میخواین آب بخورین <تصفح> <من> آف <آب> بخوری <تصفح> نه صدا من تأثیر شدم ده. سر جریان تازندتون روان همه نکان و جهان شاد هم. همی دشت گرده بیابان و به رنج و به سختی و دور از گروه چنان بود که روزی پرندیشه بود به پیشش یکی باربر بیشه بود بدان مغزارندر آمد دو جن جهان خورم و مرد را دل بکنم. همی گفت مانا که دیو مانا یعنی همانا همی گفت مانا که دیو پلید برای پهلوان بود که آن خواب دید یعنی به جای سروش دیو بوده که چهره خود زیبا کرده زکه خسرو ای در نبینم نشون. چه دارم همی خیشتم را کشم یعنی مرتب خودم از این به اون سو میکشم. کنون به برزمند یاران من به بزمندرون قمگساران من میگه یاران من دو جا هست ممکنه باشن یا در رزم که نام در حقیقت بر خودشون فرغم بکنن یا در بعض که کام برای خودشون فرغم بکنن دوباره میخونم کنونگر رزمند یاران من بزمندرون قمگساران من یکی نامجوی و یکی شادروز شادروز البته تلفظ درست در, در خراسان هنوز میگن روز مرا بخت افشاند گوز. یعنی گردو رو اگر شما رو گمبت بزین و قلب میخوره نمی‌مونه که. وقت من گوز بر گمبت افکرم یعنی بیچار شدم پریشان شدم و زندگیم بیبوده میره همین برفشانم بخیره روان مرتب روان خودم رو دارم و زمان خودم رو و عمر خودم رو از میدم. دست میدم خمیده است پشتم چون خم کمان همانا که خسروز مادر نزاد اگر زاد دادش زمانه بباد. زجستن مرا رنج و سختیشت بر. شخص کسی کو بمیرد به زهر. یکی چشمه دید تا بونز دور. یکی بالا دلارام پور. یکی جام پرمی گرفته به چنگ به سربر زده دسته ای و رنگ. همی بوی مهر آمد از رویو، همی زیب تاج آمد از مویو. به دل گفت گیوین به جز شاه نیست، چنین چهره جز در خوره گاه نیست. پیاده به دو تیز بنهاد روی، چو تنگندر آمد گفه شاه جوی، گره سوس شد بر در رنج اوی. پدید آمد و گنج اوی. چو که خسته از چشمه او را بدید بخندید و شادان دلش بردمید. به دل گفت که این گرد دوز گیو نیست. بدین مرز خود زیندشان نیو نیست. چو آمد برای گیو بردش نماز به گفت که نام و سرفراز برانم که پور سیاوش تویی ز تخم کیانی و باهوش تویی. چون این داد پاسخ برا شهریار که تو گیوه گودرزییی نام دار بدو گفت ای سر بدو گفت گیوی سر راستان ز گودرز با تو کزد داستان بدو گفت که خوسروی شیر مرد مرا مادرین از پدر یاد کرد بدو گفت گیوی سر سرکشان فر بزرگی چه داری نشان نشان سیاوش پدیدار بود چو بر گلستان نقطه قار بود قار یعنی سیاهین یعنی غیر روی گلستان یعنی گلستان تنش یک نقطه خال بود خال سیاه بود تو بکشای و بین مای بازو به من نشان تو پیداست بر انجامن چو گیوان نشان دید بردش نماز همی ریخت آب و همی گفت راز مخصوصی که عشق میریخ و آرام آرام با خودش سخن میگفت. به از آن بیشه هر دو راه بپرسید خسره بز کابوس شاه. بزان هفت ساله غم و درد اوی زه گستردن و خواب و از خورد او. به دو گفت که کنون زرنچ دراز تو را بردهد بخت آرام و نازبر یعنی میوه این برای این و اینجا که بردی خواهیدید دید فرنگیش را میز کردند یار نهانی بر نهادند کار که براهند در آرند روی نهان از جهاندار پرخاش جود یعنی افراسیان با. با درود به مجدری خوش اخلاق آقای هدایتی لطف دارید استاد فریدون جنهی فردوسی زمان پدر مهر و امید ایران بزرگ سرزانه پایدار سرزمینمون ایران درود بر روان روان و جان پاک و ایزدیتان درود بر نام نیکتان چهره نورانی و آوای نرمتان هموار امید امیدبخش جان و روان ماست امیدم به امید پرمهرتان است همه ما جوانانی که سرزمین عزیزمان ایران را به... همه ما عزیزانی که به سرزمین عزیزمان ایران مهر می‌ورزیم فرزندان شما هستین استاد جای فرزندتان سبز، یکی از فرزندان شما شبنم شبنم امیدوارم همباره بر روی برگ گل به در پرتوی آفتاب همه فرزندان ایران شاد و سرفراز باشند سوال کردن در پیامکی هم سوال کردن که آیا در میون نگارش شما موارد زیر هم وجود داره نمودار شناسی پهلوانان جدول و نمودار تاریخی پهلوانان نقشه جغرافیایی همچون طور جا نقشه جغرافیایی جاها و شناسی این آقای فرندش سوال کردن بله همه این جور چیزا هست در اون پیشگوفتی که بر شما شاهنامه نوشتم همه این موارد هست و خب ضمن در بین 20 هم اشاراتی کردم منتها مهم اون پیشگوفتیه که در پیرامون 480 صفحه دقت رحلی یعنی آچار تمام مسائلی که مربوط به شاهنامه هست از جمله تاریخ و جغرافی و نجاد و همه اینا در اونجا هست اگر بخونن متوجه میشه خدمت شما سلام بسندن آیا ایر در ایلن هم همون معنی ایر در کلمه ایرانه آیا علیه از آهویه نسال کرد. شاد باشید درود بر علی و درود بر آهویه هم همه اسم ایرانی زیباست متاسفانه روسته های ما همه دارن از بین میرن همه اون نام های زیبا همه اون تواریخ زیبا همه اون کوشش ها همه اون کشاورزی ها اینا همه داره از بین میره این افتار شرق و اومدن شرق حالتی خود رو شکل دارن اتفاقاتی میوفته که این اتفاق نیوفته حالا دارن در اوستان ها بل. بله ایرلند یعنی, ایر. یعنی سرزمین ایران حسن ها یعنی سرزمین ایران و ما لام بهسوت تلونی‌های بودن که بله رفتن بله اروپا همه رو ایرانی‌ها تشبیه مضا الان اونا فرزندان پر بورژوگی شدن و خودخواه شدن خودشون برتر حالا میبینن از مادر در و ننگشون میاد بگه ما ایرانی هستیم در حالی که نام ما همه ایرانیه ما به صورت لاند داریم یعنی جایگاه که ش... لانه از ساخته شده و بعد به سوپر لاند در شاید در حدود 15 پونزه نام دوسته های ایران با لند همراه است که همون لند یعنی پسپند ایرلند یعنی خانه آریایان، خانه ایرانیان درود فراوان بر استاد جنیدی و آقای هداریتی کردن استاد در مورد شخصیت پشوتان پرسیدن در شاه نام توضیح بدن با سپاس پشوتان برادر اسفندیاره و پشوتن خیلی از اسفندیار روشنتر نسبت به جریانات و رویدادهایی که اتفاق می چون اسفندیار برای خاطر گرفتن پادشاهی از پدرش حاضر شد که بیاد به رستم، با رستم جنگ بکنه و در نخستین دیدار رستم که با اسفندیار مطالب خیلی زیبایی از سوی رستم عنوان میشه و بعد وقتی که میره قرار شد که, بخ... که برای در حقیقت خوراک او رو فرا بخونند و نوید براش بفرستند یا خرام بفرستند در نوید و خرام قبلا در برنامه ها توضیح دادم نوید کسی که کس میره و دعوت میکنه در عوضا بود نی و عده یعنی آگاه کردن و خرام کسی که میره با مهمان همراه میاد که اینا رو بیاره به مهمانی ممکنه که خرام همون نوید باشه ممکنه نه کسی دیگه باشه ممکنه نوید یک ده خانوار رو بخواد فرا خانه به مهمانی ولی اون روزی که مهمان, مهمان ها قراره بیان اون وقت ده کس بره که اونها رو همراه خودش بیاره به مهمانی حتی برای که شیرین باشه اصب و اینها همراه می که با اسبای کسی که فرا یعنی دعوت کرده بیان به مهمانی و برگردن و بعد پشرتن می بینیم یک سخنی میگه خیلی زیبا به اسفندیار میگه شنیدم همه هرچه رستم بگفت سخونهاش با مردمی بود جفت نساید دفاعی بند تو نه, نه اندیشد از فر اورند تو سوار جهان پور دستان و سام به بازی در نیارد بدم بترسم که این کار گردد دراز آره دوستم تند این بازیتون مهمی میده نه. خود روسنومی که فشارستون فرودار فرودار خیرتمند اسمنتیار از آقای بازم بعد‌ها خیلی پند داد ولی اسمنتیار نپذیرفت و خود روسنوم با راه پند اظهار کوچیکی کرد و و با این حال اسمنتیار نپذیرفت و جانش رو بسری این راه گذاشت شما برنامه پنجرهای روبه محتاب رو به رو می‌شناوید آقای دکتر فریدون جنیدی درباره‌ی شاهنامه فردوسی صحبت میکنند شاهنامه رو برای ما گشایی می میکنند شاهنامه رو یک شنبه شب های ما متعلق به ایشون هستش برنامه متعلق به ایشون هستش با ما تماس بگیرید نگاه برنامه ما یک نگاه پرجوپی از حتماً شمایی که شنونده برنامه ما از قبل بودید این کار رو کردید که شاهنامهی رو در داری اختیار دارید و با ما همراه ما همراه آقای دکتر جنیدی شاهنامه رو می و پی میگیرید این برنامه یک برنامه پژوهشی از سوالاتی هم اگر دارید با تلفونهای دیویست و بیست بازم تونت خوندم ترت بره. از نمبر <تصفح> نه نه <تصفح> نه شوان نمبره کم نمکن نه نه شوان که دیویست و بیست این رابطه یا ساشاگردی ها. این حالا این چی که داریم واقعا اتفاق همه مردم ما نمبره بیست بگیرن در این بیاری نمبره, نمبره کمشون هم به همهت و کوشش خودشون برد دو 485 چهارصد 222-588-20 و شماره پیامک ۳ شماره ای هستش که ما تونید سوالات خودتون رو در این برنامه پژوهشی مصرف بفرمایید. در سوالاتی که هست از شما پرسیدن سلام اسمن خدمتتون درباره سیمرغ پرسیدن که واقعا وجود داشته من هنگامی که کتاب زندگی ماجراجوانی می‌ریشتم به عنوان پس گفتار یک چند مطلب رو اونجا یادآور شدم یکی اینکه این احتمال این داره که یک سفینه فضایی بوده باشه چون اون زمان با تبلیغات عجیبی که اریک فوندینیکن کرده بود و ثروتش این گفتی که با خودش به همزده بود و اینها جهان در رابعه خدایان و عرابه خدا. جهان در تبوتاب این سفینه‌ها میسوخت بعد در سال 1982 فوندنیکن رو در تلویزیون لندن محاکمه که خودی نمیدونست اسم محکم است یعنی در واقع بعد اون وقت اکثر نشونا گفت حمر درو گفتی همه افسار خود دست اوردی نه اینا, اینا نیستن با این حال در کشورهایی مثل کشور ما هنوز اون خونده میشد. بعد با اینکه ظاهرا این تور می نماید اما خرد هم ممکنه نپذیره اینو برای نزدیکترین ستاره ها به ما چهار پنج سال نوری فاصلهدارن اگر چهار مثلا چهار سال نوری رو صدسی سال چسب بکنید و زب در شراعت نور این یک چنین فاصله این تبدیل میشه به چند قرن چطور یک موجود زنده میتونه در این چند قرن بیاد و برگرده اینها هم حول خوب از سوی خود سی مرغ در سین در سین گفته میشه که مرغ آهنینه چوری نداریم سین یعنی آهن. اما ما یه واژه دیگه هم داریم اصلا سع در در نمودی که پزشکیه این همین نامی هست که رفته به مصر سینوه که بعد اونجا به نام سینوه شراخته شد زبی الله من سوریم که خیال باف و عجیب روزگار ما بود چار صفحه کتاب در باره که پزشک بود بسیارم. سع, سع اینه شد سینوه اونجا این اندازه ما میدونیم کار سیمرو درشان و غیر از پرستاری از یک فرزند دو در حقیقت پزشکی میکنه. و سعینا نماد پزشکیه. این انتازه دیگه فکر کنم بس باشه. بله. سوال کردن که این بید از فیلوسی بزرگ به یزدان داشتیم. کجا این سر انجامه بد داشتیم؟ سپاس دیاکو گفتند. دیاکو. از... بعد دیاکو. این شعر زیباست. مفهوشم خیلی خوبه. اما از شان نیست. از برای, برای که پس از... روی داد این شعر وسط کسی گفته شده. به. خب ادامه داستان می خنددید گرفتن که خصص شب رنگ بهزاد را اگر به خاطرداد داشتهرشید در برنامه سیور هنگامی که سیش میخواست به ایران برگرده به ایران اسب خودشو شب رنگ رو بر گوشش راز گفت و گفت. رکابه کسی ندو که بله این البته دردتی میدونید که در تایی عصب تقریباً 27 تا 30 سال بیشتر زندگی نمی کنم ما که سیاه بخشم عصب سیاه داشته که خوصم عصب سیاه یعنی یه نژاد عصب سیاه که همطور واقع میمونه تا فرزندان و فرزندان سوار برون بشن اینا آراعی داستانه بیان. منظورم این که اسب خوبی اسب خوب هم شکله لاوازجورد همون بله فرنگیس گفت در درنگ آوریم جهان بر دل خیش پنگ آوریم یکی مغزور از ایدر ندور به یک سوز راه سواران تور تو برگیزین و سیاه یعنی اسب سیاه برو سوی اون اون پگاه گله هر چه هستن در مغزار با به آبوشخور آیت سوی جوی بار به بهزاد بن مایزین و لگام که او را هم گردد تو اورام گردت تو بزرگام وقتی دیدی که ایستاد و نمیخواد دیگه بگریزه تو برو جلو برو نزد او نیک بن مای بیا بیارای و وبسای رویش به مهر یعنی نوازشش کن با مهر نوازشش کن سیویس چون گشت از جهان ما امید بر رو تیره شد روی روز سفید چون گفت گفت شبرنگ بهزاد را که فرمان ما سپس باد را همی باش بر کوه و در مغزار چون که خسروهایت را خواستار بارگی باش و گیتی بکوب. ز دشمن زمین را به نعلت برو. بدان تند توند بالان آهادند روی چنان چون بود مردم چار جوی خسیله چا آمد به تنگی فراز فوسیلی یعنی فوسیله یعنی اسب عصب بله یعنی بزنی این واجه در عبسته بوده پس پس یعنی بند اصلا بعد پسوکه یعنی چیزی که به بند اومده و این این جانوری که به بند انسان اومده گوسفند و بزرگ دیگه بنابراین پسوکه شد نام گوسفند. بعد تغریشه اکلاد شد فشو الان در زبان کردی و تاتی و تالشی پسو میگن به گسفند هنوز شد فشو و بعد دارنده فشو یعنی دارنده گلر و دارنده گوسفند رو میگفتن شوند یعنی دارنده گوسفند. این شوند در زبان فارسی تبدیل شد شبان در زبان کردی شوان میگن الان بعد همین واجهه شوه هست، شوند، چود توپان، په گرفت، در زبان انگلیزی شیپ بهش میگن، به گوسمان میگن شیپ، همینه. بعد این پسو در مورد گله اسب همین فوسیله نگاه کنید، پسو در خودش داره تقریبا. یعنی گله اسب اسب هم پداخره در پایان آخرین جانوری که بشر محجر و جو و نیاکان ما رام کردن اسب بوده. برای اونها هم گله رو فوسیله میگفتن که هنوز هم گله همونطور، فسیله گفته میشه فسیله چو آمد به تنگی فراز بخوردند سیر آب و گشتند باز نگه کرد به و کعی را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید همین داشت در آب خر پای خشنی پاش که توی جوب آب بود این پا رو بر نداشت قدم بقیه اصفار رفتند او این کارو نکرد. جمع نخواهد. همین داشت در آب خرد پای خیش از آنجا که بود دست ننهاد پیش. چوکه او را با آرام یافت به و بازین سوی او شتافت به مالی چشم او دست و روی برویال بر بپسود و بشخود موی این که از به وقتی ایرو زمین بخوابه و و خواشا که اینا به تنش یعنی به, مو... به, مو... به مو... تنش است باید این رو پاک کرد. و یک باید یه بله. بله وسیل از که شانه یه که چند تا شانه رو کنار هم بگذارن که مثل بروس بشه منطور آهنی تمام این چیز آهنی با اون قشو عصف رو میکیشن تا این که گذخاک بزنه و اصل از این نوازیش بسیار لذب میبرن این کار چون قشو دستش نبود میگه که رویال بپسود و بهش خودموی این کار رو با دستش کرد زگامش به دوداد زین برنهاد وسی از پدر کرد با درد یاد. فرانگیز چون روگی به دید شد از آب دیده روخش ناپدید. دو روخ را به و برش برنهاد ز درد سیاوش بسیکرد کرد یاد. در گنج بخشاد پیش پسر پر از خون روخ از درد خسته جگر، خسته یعنی مجروح. چون این گفت با گیف که برد رنج ببین تازه گوهر چه خواهی گنج شو افتاد برخاسته چشم گیف گذین کرد در زیا، سیاه نیو. در معرب زره هست. اما اینجا می‌بینیم که به خاطر اینکه آهنگ سخن بیاد در از در نام برگه میشه. زره آهنگ سخن رو به هم میزد. گوهر که فرمایه یافتند ببردند چندان که برتافتند، یعنی اون اندازه که تحمل شد تا قصد که ببرند. چون این کرده شد، برنهادند زین بران با پایان با آفرین، فرنگیز ترکی به سر برنهاد برفتند هر سه به کردار باد. به برای سرزمین ایران به سرزمین ایران به سوی... به سوی ایران